زوده کم از فصل فاصله یکم این اما 23 امین برنامه رادیو هش در بنفشه و البته دومین دو برنامه ای رادیو با گروه جادو تو این با نقشای دومین ماه هست سال خورشیدی رادیو هش بنفشه میاد که بگه تا اوردی بهش تمام نشوده عاشق بشید و ول مبا ده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 گفته، قطه میکروفون منه برادر. نداریم بهش دست بزنیم. برید من بابا من باید حرف بزنم نوبته منه. سلام، الهام هستم و در فصل جدید رادیو با شما خواهم بود. من به اتفاق میکروفون رادیو 18 بنفش از یک ساله شدن رادیو خیلی خوشحالم.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 ایا که رسمیه دیئر مستر وایت. ای ام جس فالی وایت. بچا میتونید مستر و میسیز و اینا رو بیارید خب میتونید مثلا عنوان های مثل دکتر پروفسور خب دیئر پروفسور جونز پروفسور جونز عزیز خب از این لقب ها میتونید استفاده کنید یا مثلا در مورد عمو دایی خاله اینا مثلا دیئر آنت لوسی ام لوسی عزیز یادم آدم سال اول دانشگاه جو بسیار شدیدی بنده رو فرای گرفت. دانشگاه ما هم که دانشگاه دولتی بود. خلاصه نمیبرم ها ولی انقدر حال میکردیم عکس سردر دانشگاهمون رو پشت تو تومنی چاپ کردم جو دیگه میگیره انقدر که اگه ولمون میکردن حتی برای نماز جمعه هم که شده میرفتیم یه سر به دانشگاهمون میزدیم خلاصه یادمه به عنوان یه ترم دیگه شورش رو در آورده بودیم همه فوق برنامه ها رو شرکت میکردیم هر برنامه‌ای که دانشگاه میذاشت و نمیذاشت ما ترم یه پای ثابتش بودیم گرفتن بن نمایشی که یکی از همین جبگیریا.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 بعدن یعنی کی آخه من دانشجویان کلاس دارم فهمیدم دانشجویی من نمیدونم هنوز بول نیومده بفهمی سلام من دانشجو من کارمند بانکم کار چیه راستش من کتابم بگیرم ثبت نام کردم اینم کمه نمیشه فعلا کتاب ندادم برو بعدن بیام بعدن بعدن یعنی کی آخه من کلاس دارم فهمیدم دانشجویی من نمیدونم هنوز نیومده نمی سلام من, من چیه؟ راستش من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 به حال ریاست محترم بانک حتما ارزش کتاب و دانشگاه و دانشجو رو میدونه اما راستش رو بخوای؟ زهی خیال باطل ایشون متاسفانه انقدر فرصت نداشتن که به حرفای من گوش بدن روزای نمایشگاه کتاب پشت سر هم میگذشت و من به هر بانک دیگه ای که مراجعه میکردم میگفتم باید به شبه بانکی که از اول انتخاب کردیم برید و بن خودتون رو بگیرید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 چون من مجبور شدم در واپس این روز نمایشگاه و شلوغی مزاعفش در مترو له له بشم در ها با خیلی عظیمی از جمعیت رو به رو بشم و خیلی از کتاب که دنبالشون بودم رو پیدا نکنم نمیدونم شایدم همینی که هست توقع من زیادی بنامه اون چند روز بود که به من فهمون من دانشجو با یک دیپلمه فقط در چهل هزار تومن ناقابل فرق داریم دیگر هیچ؟ حواز از من گفتارم گیتار از من دیدارم تو هندو از سیگار از من آغاز از من تکرار است تو حواز از من گفتارم گیتار از می‌دارستم آن دو حسرت سیگار ازمه آغاز ازمه از آغاز استم تکرار است تو لبخند ز سیب آمد که گوزیمه تو رسوآمد که ساکت بودم صدام نذا دن هون بودم پیدام نذ که فریادم که مرا مرا هوازم ده بومن بومن جواب تا نتام نتا شر ون بزن آوا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 بیواسطه رضا کازمی عزیز با داستان آکاردیون نواز مهمان گوش و دل شما خواهد بود نواز ساز میزد با کارد اون از ها تو راسته امیرآباد از چهارراه بالا چپ خیابان شروع میکرد می میامد پایین کوچه ها را داخل خارج می شد. کوچه یکی مانده به چهارراه پایین را که تو میرفت خارج نمیشد دیگر کوچه بنبست بود بود خانهاش را کسی نمیدانست انگاری تو کوچه بنبست آب می میرفت زمین اما فرداش دوباره سر چهارراه بالا بود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 من چند سال پیش تولدم بود و منم چشم به راه گرفتن کادو. خب مسلماً در فرایند عاطفی اقتصادی تاریخی کادوگیری سه تا نکته خیلی مهمه. یکی اینکه چه کادویی میگیری دو اینکه از چه کسی میگیری و آخری اینه که چه کادویی رو از چه کسی میگیری خب اولوس فرا رسیده بود و من منتظر بودم تا یکی از بهترین کادوهای زندگیم رو از یک آدم استثنایی بگیرم و کلی هم شوق داشتم. حالا از توضیح مقدمات دیدار در کافیشا شاپ بلدت وقت می‌ذاریم. نوبت رسید به کادو. بله و این دست‌ها بود که به سمت کیف سامسونت می‌رفت. اون لحظه راستش رو اصلا اصلاً نمی‌فهمیدم شخص مورد نظر داره چی میگه. یادم میاد که چشای من به شدتش حرکت انگشتای ایشون رو روی قفل کیف دنبال می‌کرد. یه چیزایی هم میگفت دیگه که من به صورت مبهم بوم بوم بوم می‌شنیدم و دل تو دلم نبود که چی قرار از تو کیف بیرون بیاد.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 آره اونو صحبتش بود که چه ساعتی بهتره؟ ای و حتما ساعته خودو کنه حتیقا مارکدار باشه ای بابا بودو دیگه یه کادوی ناقابلی هم براتون گرفتم الله که خوشتون بیاد بفرمایید بله بالاخره کادو اسکیف بیرون اومد کادو شده بود اما کاملا مشخص بود تنها چیزی بود که حتی فکرش نمیکردم.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 خدایا من چه بدیی کرده بودم؟ یادم چشام و کتاب و اسمش نمیتونستم بلند کنم جلال میخواد سرامو به دیوار بکوبم اون تو اونجا دیوار نبود که آخه آدم وقت قرار به یکی کادو بده بیش خودش نمیگه طرف چی دوست داره نمیگه اگرم میخواد کتاب بده باز از خود سوال نمیکنه. آخه این کتاب در حد این آدم هست یا نه اصلا این کتاب میتونه هیچ ربطی به این آدم داشته باشه؟ به دردش بخوره چی شد از کتابتون خوشتون اومد بله خیلی خوشم اومد خیلی آخه چیزی نگفتین گفتم شاید دوست نداشتین نه من شوکه شدم که اصلا شما کجا می‌دونید من چقدر به همچین کتابی علاقه دارم بله منم مطمئن بودم این کتاب مناسبیه برای آدمی مثل شما در واقع طرز فکر شما و این کتاب خیلی به هم نزدیکه و من خودم هم عاشق مفاهیم این کتابم من دیگه نمیفهمیدم چی می ایشون و فقط در حال ورق زدن و خوندن فهرست کتاب بودم که پر بودش از قولواجه های ناشنا راستش من هنوزم که هنوزه اون کتابو رو نگه داشتم با اینکه به بجز یک بار هیچ سعی و هیچ رغبتی برای خوندنش نشون ندادم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 حرف آخر اینکه هر چیزی دوره ای داره و زمونی ایه جای شروع میشه و در یک نقطه مشخص تموم میشه مثل خیلی از رویدادها، ها، جشنوارهها، ها، ها،, ها، مثل نمویش کتاب اما تنها چیزی که تموم نمیشه کتاب خریدن و البته کتاب خوندن نخریم بذاریم یه گوشه به گرفتن عکس از روی جلد و انتشار توی فیسبیک و اینستاگرام بسنده نکنیم نگیم که امروز ام از پردام حرومش نکنیم حروم نشین بخونیم. بخونیم بخونیم بخونیم قسمت یکم از فصل اول رادیو هجده بنفش. برمیگردیم دو هفته دیگه تموم